جمهوری ایرانی چه معنایی دارد؟ فقط فرم فرمالیته سازمان ها و انتخابات و امثال این صورت ها را گرفتن که از این نمی شود حکومت رو بنا کرد حکومت سازمان باید تراوش فرهنگ درونی انسان باشد باید نه تنها در اندیشه بلکه باید ریشه در روان و زمیر داشته باشد از جمله گرانیگاه جمهوری ایرانی روی یک پایه قرار دارد که اخلاق ارزشی باشد اخلاق ارزشی از کجا پیدا می شود از تصویری را که فرهنگ ایران از خدا داشته است خدا تجربه جرف که ایرانی داشته است دینی خدا را در رنگ و آهنگ میشناخته است، در رنگ آرنگی و در آهنگ های گوناگووم و در رنگ های گوناگون. این بود که اخلاق بر پایه کشش و جستجوی انسان قرار داشت. بر در ادیان نوری و ادیان ابراهیمی خدا خدای روشنیست خدای رنگ و آهنگ نیست خدای روشنی در خدا در تصویر خدا که تصویر بنیادی دین است اخلاق بر پایه اراده و اطاعت قرار دارد و اخلاق بر پایه خودی و ناخودی درون گروه و بیرون از گروه قرار دارد یعنی دو نوع اخلاق قرار دارد دو شیوه عرب دارد در صورتی که در خدای رنگ آهنگ چون که این رنگ ها به هم پیبستن معنای خیر و شر وجود ندارد چون که این رنگ ها همه یک تیف بود. و درست این تیف را خدای روشنی به عنوان نسبی کردن حقیقت میفهمد. در خیر مطلق مطرق است، این خوب است اون بد است. و این پایه ادیان ابراهیمی می ماند، پایه دین نظردوی هم می ماند. و این را ما می مورد بحث قرار بدیم و این خیلی مفهوم اساسی، که می بینیم که اسلام بر پایه امر و نه قرار دارد. این درست همین مفهوم این است این که اخلاق بر ارزشی نیست نمیتواند هیچگاه خودش را تبدیل به اخلاق ارزشی بکند. اینی که واژه ارزش رو ارزش های اسلامی به کار میبرند این واجه به کلی توهی از معناست خدای نوری که گوهر روشنیشون برنده است تیغ است میبره حتی کلمه خلق معنای بریدن دارد مثل خرق گوهر روشنیشون برنده است نه تنها نیک را با اراده خود معین میسازن بلکه از مردمان نیز می‌خواهند که با اراده از آنها اطاعت کرده و آن نیکی را اجرا کنند و از آن بدی با اراده رو برگردانند و تبعا گرانیگاه فطرت انسان و طبیعت انسان را چنین اراده می میدانند که آزادی محدود در برگزیدن میان وسقه دارد که از او وضع شده است این پیمان بوندنیست این میثاق عهد تمام بر پایه همین قبول است ایمان بر پایه این اراده قرار دارد اراده به کردن آنچه او میگوید و نکردن آنچه او میگوید زردوش هم فقط انسان را دارای چنین خردی میدانست خرد در مفهومی را که زردوش از خرد دارد خرد برگزیننده است خرد جوینده و آزماینده نیست خردی است که میتواند میان چنین یکوپدی را که او تعیین کرده است برگزیند میان اینجی و اجی را باید برگزیند و در یکی را که برگزید و با او اول به او ایمان آورد بایستی بر ضد او بجنگد بر ضد عجیب بجنگد از همینجا مفهوم جهاد در زردوشتیگری پیدا میشود. و چنین گزینشی را نیز آزادی می‌داند این گزینش بین در عبارت بندی اسلامی بین کفر و دین را بدین سان اخلاقی بنیاد نهاده میشود که نه تنها از اراده پیدایش یافته بلکه تصویری از انسانی میکشد که گرانیگاه طبیعتش ارادهای برای تحقق دادن این نیکی و اعتراض کردن از این بدی و نابود کردن این بدی هست این بنیاد گوهر این ادیان است از این رو نیز هست که مردمان با چنین اخلاقی از تویی با اکراه درونی خود گلاوی چرا؟ چون که کشش های طبیعی برزده این و نحیا هست و از سوی با گناه و وحشت از عذاب در پاداش‌های این جهانی و آن جهانی این امرو نحیا چون های طبیعی در تضاد با این نیکو بدی خیر و شر قرار میگیرم چون که انسان تیفی از کشش دارد که کاملا نتازگار با این امرو نحیا هستند. طبعا مردمان هنگامی نتوانستند چنین خدایی را با چنین قدرتی ترد و کنند چونکه این خدا برترین قدرت دارد و قدرت هم معنیش این است که اندازه میگذارد قدر یعنی اندازه قدرت یعنی مقتدر اندازه نیکوبت را میگذارد میگذارد و این رو تحمیل می کند. تو باید طبق این اندازه تبقیه این نیکوبت رفتار کن مقتدر یعنی اندازه گذار. اندازه برای همه نه برای خودش از خودش اندازه نمیگیره بلکه اندازه خودش رو بر همه تحمیل می‌خواد بکنه و عهد میثاق تمام اینها تسلیم شدن اسلام معنیش است که شما این اندازه رو بپذیرید این است که انسان را به صورت خودش می‌سازد یعنی با این اندازه می‌سازد حالا مردمان وقتی که نتوانستن چنین خدایی را با چنین قدرتی ترد و نفت کنن کار این جنبشی که ما امروز اسلام های راستین مینامیم او را هر روز اخلاقی تر و مردمی تر و لطیفتر میسازن یعنی تصویر این خدا رو به همان خدا ناآگاهانه هر روز آرمان های اخلاقی تر و لطیفتر و مردمی تر نسبت میدهند ولی این خدا به رغم خوش اخلاق تر شدن همونگون قدس میماند. اون به از که اندازه و خیر و شر ها رو معلوم میکنه. این پیشرفت اخلاقی از قدرت و شیبه کاربرد قدرت اون خدا نمیکاهد. به عبارت دیگر قدرت سرچشمه اخلاق میماند. مردمان با چنین تصویر پیش سر اخلاقی خود از اون خدا از الله کتاب و سرود و نیایش های اون خدا را میخوانند و میفهمند و راه فهم آنچه اون خدا در کتاب و هایش میگهد به خود میبندن و تیره می‌سازند. یعنی قرآن می‌خوانند، ولی راه فهم اون را با این تفسیرها و تعبیرها با این بقول امروزی ها هرمانویتیک ها خودشان راه فهم اون را میبندن میخوان اون خدا را اخلاق‌تر تر و لطیف‌تر کنند. ولی اون خدا همون میموند چه هست ولی ارتایان یعنی چی؟ سیمیرقیان، خورمدینان، مدکیان. خدایانی را که بنیاد گذار اخلاق و اخلاق ارادی باشن نمی شناختن. یعنی چی روشنی را این همانی با تیغ نمیدادند با تیغ برنده که خوبی را از بدی می برد قط می کند. این خوب است اون بد است این کار را بلکه آنها خدایان رنگین و آهنگین داشتند. خدایان رنگ آ... ر... که رنگارنگ نقاشی نقش و خداوند آهنگ موسیقی بودن رنگ و آهنگ بریدگی نمیشناسد قوش غزه که بریدگی نمیشناسد رنگ پر تابوس بریدگی نمیشناسد آهنگ هم همجور ملودی ها پرده ها از هم در هم میقلتند مثل چین در هم متموج می کنند و رنگ و آهنگ فرهنگ و اخلاقی که گوهرشان کشش و جویش هست پدید می آورد. خدایان آنها جائل و واضع اخلاق نبودند بلکه گوهرشان رنگ و آهنگ یعنی موسیقی بود خدایانی بودند که در رنگ و آهنگ در جهان پدیدار می شدند ایرانیان در این رنگ و آهنگ چه تجربه می‌کردند؟ میکردند؟ این خیلی مهم است آنها در رنگ و آهنگ که گوهر خدایانشان بود، بودند نه تنها سعادت و خوشی و شاده را بهرهنه بلکه این رنگ و آهنگ ها وجود مردم را سبز می‌کرد. و نیکی و, و زیبایی و لطافت و ظرافت از خود آنها شکفته میشد یعنی اندازه یعنی اخلاق از خود آنها شکفته میشد اخلاق شکوفیگی اندازه خود آنها بود خدایان که حقیقت یا شیرابه جهان هستی بودند خرابه خرابه خرابه یعنی شیرابه جهان هستی در این خدایان که حقیقت یا شیرابه جهان هستی بودند در این رنگ و آهنگ شدن کشش گوهری داشتند خدا رنگ و آهنگ می میکشید سرود موسیقی میکشد رنگ زیبایی میکشد آنها حقیقت تر رنگین و آهنگین بودند گوهر خدا یا حقیقت در این رنگ و آهنگ کشش یا جاذبه بود حقیقت یا خدا میهنجید میکشید جذب میکرد در گرشاس نامه اسدی توسی دیده می شود که گرشاس دو تجربه از سیمرغ دارد که اینها یکی در جزیره اسکونه است یکی در جزیره رامنی که میبینیم در یک جا خدا رنگارنگ در قوس قضا در پرش آسمانی اصلا کلمه پرش در فرهنگ ایران معنیش رنگارنگ بوده است که اینها رو ما یک بار بحث خواهم کرد پرش یعنی همیسته سهب شدن همون کلمه فریش است این را ایرانی ها فراموش کردن روی فرش نیستن فرش یک سهب شدن زمین است سهب شمعن و این یعنی گلهای رنگارنگ از آن پدیدار شدن پرشمنیشین بوده است برای همه خاطر هم خاطرم رنگارنگ است این رنگارنگی آسمان و رنگارنگی زمین را نشان میداد است در گرشاست آمد گرشاست که نیای است، این تجربه دینی را می کند که یک زفته سیمر در رنگ‌های گوناگون پدیدار می شود و یک بار در موسیقی پدیدار می شود که آهنگ های گوناگون که دویست ابزار موسیقی در یک کنسرت بزرگ با شکنهای در هم موسیقی می نوازند و همه از شنیدن این موسیقی به خنده و شادی و رقص می افتن. این تجربه ایرانی از خدا بوده خدا و حقیقت رنگ و آهنگ می شود اون نوز نه باعث و عامر اخلاق است و نه خواهان اطاعت و عبودیت و تسلیم شدگی از انسان ها چرا؟ چون خدایا طبیعت گوهر کششی دارد اگز یک سو این خدا و حقیقت می کشد در پناه. و سوی دیگر انسان و رهبری نهفته اون کشش خدای حقیقت رو میجویاد خود نمیداند خدا چیز نمیداند حقیقت چیز ولی این کشش دارد او را میکشد جاذبه دارد این را پیدا میکند تبعا گرانیگاه وجود انسان کشش و جود که جفت هم دیگرند رنگ آهنگ هم میکشن و هم جوینده میسازند این تا اون حقیقت ما را نکشد ما نمیجویم ببینید این مفهوم رهبری اصلا ما رهبر نداریم پیشوا نداریم ولی یه فقیه نداریم اینها خدا حقیقت خودش انسان را میکشد و انسان دنبال اون چیز نهفته میگردد که نمیداند چیست اخلاق و دین و فرهنگ و اجتماع و حقوق و دانش بر پایی کشش و جویش یعنی چی جست کردن در تاریکی و آزمیدن این بر پایی کشش و جوشش بر این هر دو استوار اخلاق و دین و فرهنگ و اجتماع و حقوق و دانش بر پایه‌ی کشش و جویش استوارند بدینسون اخلاق از قدرتی وضع و معین ساخته نمی شود بلکه در جستجو و در آزمایش از اجتماع یافته می شود اخلاق یعنی نیکوبت که باید با اراده اجرا گردد ذاتاً متلازم با اکراه است. اراده با چیره شدن همیشیدی خود بر کشش بر همین کشش های درونی با اکراه کار دارد اکراه چیست؟ اکراه چیست؟ پی این پیدایش کشش ها و جویش ها گوهر انسانو اجرا کردن هر امری یعنی نیکی وعد شده خیر و شر را وعد شده گلاویز با کشش‌های گوهری و طبیعی انسان هست. اراده ند خدایان رنگ و آهنگ برجسته و نیرو ساختن یکی از کشش‌های گوهری خود انسان در در اثر کشش رنگ و آهنگ است و با مفهوم اراده و خود در عدیان نوری فرق دارد این است که اخلا و شریعت خدایان نوری اعدا ادوب یعنی بودورترین دشمن خود را خدایان رنگین و آهنگین می دانن. و طبعا دشمن رنگ و آهنگان یعنی کشش و جویش را نمی توانند تحمل کنند با آنها را به نام فریبنده و گمراه کننده و وسوسه اندازنده و هوا و هوس نفس اماره ام زشت و پلیش میزازم کشش و جویش انسانی را فقط موقعی که تا اراده و از همراهان اراده باشد میپذیرم وگرنه کشش و جویش را به انوانه نفس و هوا و وسوسه اقواگر و, و فریبنده و گمراه سازنده و دشمن بزرگ انسان می شمارن. شیطان این که در ما وسوسه می اندازن. یعنی یعنی این گوهر کششی و جویشی ما شیطان می شود انسان رو دشمن طبیعتش می و انسان را اصلا می شکافن و پاره می سازن. یعنی بدون این میکنند. می کنن. با پیدایش ادیان و خدایان نوری رابطه انسان با رنگ و آهنگ با هنرها و با موسیقی با هنرهای نقاشی و مجسم سازی و سایر هنرهای که با رنگ کار دارد و با موسیقی که گوهر تنوع دارد بوهر تنبع داره ببین تنبع فرق دارد با نیکیوبتی با سیاهوی سپیدی این با رنگارنگی کار دارد که به هم پیبستند او با سیاهوی سپیدی دارد یا سیاه است یا سپیدی یا نور است یا دلمت است یا کاپر است یا مؤمن است یا عشوان است یا دروند است یا اغیار است یا اخباب است این است که ادیان خدای نوری رابطی انسان با رنگ و آهنگ که گوهر تنوع دارد رابطه خطرناک می‌گردد چون تنوع بر ضد مفهوم نیکو یا اخلاق یا امر و نهی آنهاست گوهر رنگ و آهنگ با گوهر خوب و بد یا شر و خیر یا معروف و منکر یا راه راست آنها سازگاریست این مفاهیم اخلاقی استوار بر بریدگی نیکی از بدی و یا تضاد خیر باشد تضاد مؤمن با کافر تضاد خودی با ناخودی و اخلاق درونگوهری خود و اخلاق فراچوی گوهری خود اینها در تضاد با هم قرار میگیرند مثل تنوع نیست که یک تیف درست میکند این اخلاق است که در با تنوع رو در اجتماع من کسی را که به گونه دیگر رفتار می کند یک نوع رنگی از گلهای اجتماع خود می‌دانم. این فرض دارد که این اخلاق را اخلاق یک کافر یا یک ملحد یا مشرک بدانم که او را باید از بین برد این را به عنوان تنبو به عنوان زیبایی اجتماع می شناسم کاستن کل جهان به این دو مقوله کار دارد در این اجان باید جهان رو به دارالحرب و دارالسلام تقسیم کرد و برید راه دیگری نیست مثلا جهاد بر این پایه بنا شده است اخلاق بر این پایه بنا شده است وقتی درون اجتماع هم بر همین پایه بنا می شود همین اصل به درون جامعه آورده می شود در حالی که رنگ و آهنگ پدیده های اجتماعی و اخلاقی و سیاسی را در طیف در رنگین کمانی پیوسته به هم از دیگر بودها میشناسن این هر چیزی دیگر است غیر از دیگر است اما متضادش این دیگر گونه بودن گوناگون بودن گون گون یعنی رنگ گوناگون یعنی رنگارنگ اون وقتی حتی به تغییر میگوییم دیگر گون شدند تغییر بد نیست بلکه رنگش رنگ دیگر میشود زیباس ببینید دواجه تغییر ما دواجه تغییر در پرهنگ ایران معنای مثبت دارد بلی کسی به اون دیگر گون شدن ما میگویم یعنی تغییر کردن یعنی چی؟ یعنی به رنگ دیگر در آمدن به رنگ تازه در آمدن تغییر یک مفهوم در پارسی یک مفهوم کاملا مثبت است که نادیده گرفته میشود انسانها دیگر گونه یعنی به رنگ های دیگر هم. اون وقت بحث اینجا این بحث شر و خیر می انتخاب میانشه خیر و شر و کاغپر و مومن و روشن و یه اینها به کلی با بحث میان عرضش ها در با تنبو فقط دارد اونجا معطل دهست مطلق و نسبی است اینجا بحث اصلا مسئله نسبی نیست او نمی تواند رنگ و آهنگ را همیشه در مقوله نسبی درک می کند که خوب نیست شر است یا باید سپید باشد یا سیا یا باید ظلمت باشد یا باید نور بنابراین اخلاق ارزشی اخلاق ارزشی با اخلاق نیکوبدی که در این ادیان جا افتاده است و گوهر این ادیان را تشخیص نهد فرد دارد این است که جمهوری ایرانی بر فرهنگ ارزشی ایران بنا شود.